سادو شستو حديث أمام الترمذي رحمه الله ميوياد حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطابنا يسار أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشوية فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ و ما توضعه حدیث صحیحه از حدیث امه السلامی رضی الله عنها همسر رسول الله علیه صلی اللہ علیه صلی گوشه علیه از یک تک گوشتی از گوشفند بز الله گوشه گوشی گوشتی یک تک گوشتی کباب شده کباب شده مشویه یعنی روی زغالی آتشی چوبی اون گوشت را پخته تقدیم میکنه برسول الله علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ رسول одну صلی اللہ وسلم از اون گوشت کباب شده میل میکنن، ثم قام الى الصلاة سپس رسول الله علیہ صلی اللہ علیه و سلم میرن به نماز و ما تواقعه و وضوهم نگرفت، تجید وضو نکردن تجید وضو نکردن چون ابتدای امر بر این بود که رسول الله علیہ سلوت و در مقابل گوشت که پخته می شده وضو می گرفتن تجید وضو میکردن برای نماز ولی آخر امر رسول الله علیہ وسلم بر این بود که تجدید وضو نکنه مگر برای گوشت شطور مگر برای گوشت شطور که صحابه رضوان الله علیه سات و سلامه این سوال پرسیدن آیا اگر گوشت شطور خوردیم وضو بگیریم برای نماز فرمودن آری این است که بالمو ازش برداشت کردن که وضو گرفتن برای نماز هر که تو وضو داشتی قبل از خوردن گوشت شطور بعد از خوردنش باید وضو بگیری و واجبه بر تو و وضو نقص شده یعنی باطل شده با خوردن گوشت فقط گوشت حکمش باقی میمونه بقیه گوشت ها دیگه نیازی به تجدید وضو نیست و اینجا ام مسلمه رضی الله عنها این مسئله رو برام بازگو می‌کنن حکم شرعی در کنار حکم شرعی چی داریم محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت به گوشت کباب شده دوست داشتن حالا میاد در حادث بعدم این قضیه رو خواهیم داشت یکی از اصناف چیزهایی که از غذاها رسول الله علیه و سلم دوست داشتن مل می‌نمودن گوشت کباب شده بود گوشت کباب شده گوشتی که مستقیم بدون روغنی چیزی بدونی که سرخ بشه روی زغال یا چوبی مستقیم روی آتش پخته بشه این بهش میگن بشت مشوی شوا شده کباب شده اصل شوا از کباب میاد کباب شده 165مین حدیث 165مین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا قتیبه قال حدثنا ابن لهیعه عن سلیمان ابن زیاد عن عبد الله ابن الحارث قال اكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواءا في المسجد. این حدیث صحیح بازم هرچند که در اسنادش ابن لایی هست، البانی تصحیح میکنه حالا به خاطر طرق و تقویت شدنش با روایات دیگر این روایت از روایت عبدالله بن حارث ابن جز الزبیدی هست المصری از صحابی هست که رفتن به مصر برای ابلاغ دین و بیشتر شاگردینش و طلابش از مصر بودن. چون اونجا سکونت میکنن برای نشر علم و دعوت دادن به خاطر همین در بعضی از طرق اسناد میاد عبدالله ابن الحارث المصري به خاطر و اقامتش در مصر برای نشر علم و دعوت دادن قال این صحابی رضی الله عنه یادت عبدالله بن الحارث میگاد اکلنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم خوردیم همراه رسول الله علیه و سلم شواء شواء گوشت کباب شده هست؟ فلمسیه در مسجد. الان خودمون میل نمودیم چای یا غیر. بسکویتی تو میل میکنی در مسجد. مباحب. حکمش یه؟ موباپ؟ حکمش موباپ؟ چی حرامه؟ تجارت در مسجد. اعلان شده در مسجد. مسجد بشه ابزاری برای دنیا، برای ترفیه، بازی، له و لعب. کسی بیاد گم رو داد بزنه رسول الله صلی الله علیه و آله میشه مسجد برای این ساخته نشده کسی بیاد گم شدهشو داد بزنه تو مسجد مسجد برای عبادت الله گذاشته شده و غذا خوردن وسیله برای تقویت جان تا این که انسان قوت بگیره انرژی بگیره برای عبادت الله جل و علا چیزی است که به تو قوت میده نیرو میده تا این که تو اون عبادت را به نحو احسن ادا بگی تو غذا خوردن میشی پچمرته میشی هند ضعیف نشه نمیتونی بیستی برای نماز و عبادت و طاعت بس از این بابه هست که شرع رخصت داده در خوردن در مسجد شرع رخصت داده اجازه داده که در مسجد انسان غذا بخوره در روایت احمد هم روایت اومده با این اضافه تو موقیت الصلاه سپس، یعنی وقتی گوشت خورد در سپاس نماز برپا شد فضربنا ايدينا في دستشون گشتی دیگه گوش خورده روغنی شده دست کشیدن به سنگ همون طور که آب طاهر و متاهر پاک میکنه خاک و سنگ هم میدور اینا دست کشیدن دست روغنه شونو به سنگ ثم قم نا نه ولم نتوضا سپس بلند شدی نماز خوندیم و تجدید وضو هم نکردیم گوشش چطور بوده گوشت بزی گوشت مند چیزی بوده یا مرغی اون گوشت کباب شده را خوردن در مسجد کباب هم زدن و خوردن مشکلی هست نه مشکلی نیست رخصته کباب خوردن بده نه کباب خوردن بعد نیست کباب خوردن هم بعد نیست بلکه رسول الله علیه و صل وسلم دوست داشتند وستن آزون قشتی که کبوب میشوده سدو شسو شیشمین امام الترمذی رحمه الله ميدياد حدثنا محمود ابن غیلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن ابي صخرة جامع بن شداد عن المغیر بن عبد الله عن المغیر بن شعبه قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأوتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه قال وكان شاربه قد وفى في رواية شاربي قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك حديث صحيح حديث مغير بن الشعب رضي الله عنه مغير بن الشعب رضي الله عنه ميقويات ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خودشون رو هیچ وقت تقدیم نمی بر رسول الله علیه السلام رسول الله علیه السلام مهمان شده بود ما هم همراهی کردیم همراهش رفتیم مهمانی برای ما نبود برای رسول الله علیه السلام بود ما همراهش بودیم ناکنید پس و پیش بیادبی میشه یکم بگی اون همراه ما بود میشه بیادبی ما رفتیم رسول الله صلی الله علیه و آله همراهمون بود بی ادبیه شما در الفاظ و خطاب صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله چنین چیزی ندارید ما همراهش بودیم نه که او همراهمون بود حالا شما اگر دقت بکنید در احادیث این قضیه رو قشنگ لمسش می‌کنید ادب اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله با رسول الله صلی الله علیه و آله اون اصل ما فرعه. اون اصل ما فرعی مهمونی هم به خاطر اون بود به خاطر اون بود حفظ مکانات رسول الله صلی الله علیه و آله حفظ جایگاهش جای خودشون هم دونستن تواضع خودشون بر این تربیت شده بودن بر این تربیت شده بودن این چیزها هم در کنارش ما باید یاد بگیریم در نوع این خطاب نوع این گویش گفتن گفتار خیلی مهمه خیلی مهمه که تو عدب مخاطب گویش گفتار را بلد باشی چطور عرف رزنی خیلی نیاز به ادب داره نیاز به مراعات داره نیاز به یادگرفتن داره این نمه العلم بالتعلم. هار علم با و بالتعلم هر علمی باید یاد بگیره از اونا این گویشه هست نحوه حرف زدن هست اینا بایدی نشیدن به نظر شما نه والله اینا عرابن نه اینا تعلم دیدن اینها عدب دارن معرفت دارن علم را چونگونه دارن به همون میرسونن شما حدیث را بیارید کلبوت کافی بکنید تک تک اون که ادبیاتی که دارن در اون احادیثی که بهمون نقل میکنن چه از رفتار رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چه از گفتارش شما ببینید چه برداشت میکنید قاله غفتو مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیله این قضیه هم داره از شام نقل میکنه شامگاه بود برای شامی دعوت شدی فا به جنبین مشوی یه قطعه گوشتی از کناری یه آرد گوسفن باز خودش بیشتر صحبه این چیز را برای رسول الله علیه و سلم انتخاب میکردن برای کباب زدن گوشه و کناری از گوشت خودش سنال میاد از بازوی باز یا گوسفن انتخاب میکردن برای رسول الله علیه و سلم خب یه گوشه یه قطعه از جنبی از کناری از باز گوسفن کباب زدن و برای رسول الله علیه و سلم توم اخدة شفره گوشه را رسول الله علیه و سلم با یه چیز حادی مثل چاقو گوشته کی می‌گرد می‌برید فجعا یحز شروع کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم به تکی کردن گوشت دید پدر سر سفره برای بچه‌هاش با می‌ذاره جلو بچه‌هاش می‌ذاره رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم پدر رو برای اصحاب رسول الله صلی علیه الله علیه و سلم برای اصحابش نضمن الله علیهم اجمعین حکم پدر رو داشت اکرام می‌کرد از خودش شروع نمیکرد. از اصحابش شروع می‌کرد گوشته کی می‌کرد این میداد. دیکه میکرد جلو این می‌ذاشت انگار که چی میزبان کیه خود رسول الله علیه سلم. انگاه که خودش میزبانه در صورتی که دعوت شده ولی که چون بزرگتره این بزرگتره داره بقیه رو اکرام میکنه شروع کرد میگه قطع کردن فحزلی به همین یک تکه هم به من داد توازه تعامل خود رسول الله علیه سلم با صحابهش و اکرامشون فجاء بلال یؤذن له بالصلاه فجاء بلال یؤذنه بالصلاه بلال حبشی که مؤذن رسول علیه سنت و سلام بود اومد اجازه بگیره برای اذان گفتن برای نماز اجازه گرفت وقت نماز داخل شد اومد به اینکه اذان بگه رسول الله صلی الله علیه و سلم تازه الان غذا رو شروع کرده پس توصیه ها شیه اگر وقت نماز داخل شد شام غذا مقدم بر نماز درسته خب الان دارن غذا مل میکنن اومده اجازه میگیره برای از آن رسول الله علیه و اللہ علیه بهش میگه تربت بت تربت تره درست ظاهرش دست فرست خاک بشه دست به خاک مالیده بشه که معنای فقیر شدن و معنای اینی که دست آغشته به خاک بشه که دلات بر فقر میده شاید این الفاظ به ظاهرش مزمون باشه یا بد باشه یا نخوشایت باشه ولی که عرب این الفاظ را از باب لطف و محبت استفاده مح و معنای زدش را همیشه در ذهه داشتن یعنی دست پر از گنگ بشه، طلا بشه یعنی تو دل خودشون اون چیزی که بود، گفتم از الفاظ یک از باب محبت میگفتن برای همه کس هم نمیگفتن مثل فکلت که یا معاد مثل یا ابلک، یا املک اینها درسته که معنای بدی داره شاید برداشت بدی بکنیم ولی که این الفاظ درش یک لطف هست لطف در خطاب خودمونی صحبت کردن با دور خودمونی بودن، راحت بودن، راحته راحت با اصحابش دست به خاک کشیده بشه، مالیده بشه بلالالا وقتش الان اومدی داریم میخونیم ما دسته به غذاست یک لطف در مخاطبه هست یک لطفی در مخاطبه هست که گفتیم حقیقت اون کلمات، اون عبارت مراد نیست بلکه گویشی عامیانه که مراد نیست یعنی حقیقتش مراد نیست. ظاهرش مراد نیست بلکه از باب تعجب یا از باب شگف یا از باب لطف و در صحبت استفاده میشه و کان قد وفا وفا کان شاربه شارب شنب به سیبیل گفته میشه سیبیل های شخص بهش میگه گفته میشه چی شارب شنب و کان شاربه قد وفا و در روایت دیگر اومده و کان شاربی نسبت بده اون سیبیل ها به خودش های منم دراز شده بود بلند شده بود سیبیلاش بلند شده بود این لفظ در مصدم محمد داریم فقال له رسول الله صلی علیه و سلم به کینگ مغیر بن شعبه راوی حدیثه اقصه لك على سواک مسواک را بزار، معنی مسواک چوبی باریکه از درخت عراق استفاده میشه بذارم زیر سیبیلت بعد برات بچینمش و در روایت دیگر قصه على سواک سواک بزار خودت به بتراش الا این دو تا لفظ شروای شک میکنه که مغيرين قفت بسوداء عليه الصلاة والسلام قفت برات بتراش ام يخود بتراش هر كدوم باشه الباني رحمه الله لما ساته زريفي داره انجا لما ظريفي داره چه ميقه؟ قال الباني رحمه الله وفي الحديث أن السنة في الشارب قصه من حافته وليس حلقه كله كما يفعله بعض الصوفية وغيرهم از بعد الشعين حديث چه إنك؟ سبیل از کنارهاش کوتاه میشه با قیچی نه با تیغ چنانچه بعضی از صوفی و امثالشون تیغ میزنن از تحت میدراشن سیبیل از تحت راشیده نمیشه بلکه چی؟ کنارهاش کوتاه میشه که تو دهن نیاد قبلن هم این کارو میکردن یک چوبی میذاشتن پایینش بعد از اضافه از اون چوب چوب عراق مثلا مسواکی که استفاده میکردن اضافه از اون چوب عراق سیبیل ها رو میتراشیدن این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سبححدی عملیش حف رو میده میمونه حالا ها میان مالف میدن نه حف الشارب اومده حذف الشارب اومده درسته ولی خب میخوای با چه زبانی بفهمی عملا چطور میخوای بفهمی مثلا کلمه اعف اللحا شیخ البنیه اراده کی میگیره شیخ بن باز ابن باز رحمه الله میگه که اعفاللحا دلات بر این میده که ریش باید ترک بشه یک قطعیش هم دست نباید گرفته بشه اعفا یعنی ترک کردن البانه میگه نه ترک نیست تو لغت عرب اعفا به معنای تکثیر و زیادی میاد ریش را پرپشت نگه دارید زیاد باشه ریشتون این اعفا اینه عفد دلات بر ترک کردن نمیاد قرار بر نیست الله عفد میکنه شرکم عفد کنه نه الله را نمیکنه إن الله لا يغفر يشرك به و يغفر مادونه ذلك لمن يشاء مغفرت مثل عفه الله از همه چیز عفنه میکنه و همه چیز را الله نمی بخشه اون چیزی که بخواد عف تکفیر میاد بر زیادی میاد میگه اگر این معنا نبود عبد الله بن عمر زیر مچ دستش نمیذد جلو و یاران در منا جلو تمامی اصحاب أصحاب را رو می ریشش زیر مچ میذنه عملا خود رابی حدیث هم عبد الله بن عمر رابی حدیث عفول لحاس عملان در به همون یاد میده میفهمونه که اعفای ریش یعنی چی؟ به چه معنی است؟ اعفالله ها یعنی ریش ها رو ترک کنید نه که اصلا دیگه دست بهش نزدید نه معنی این که پرپشتش بکنید زیاد باشه ریش هاتون اعفالله ها و در مورد سیبیل چی میگه؟ خالف المجوز مخالفت بکنید با مجوز و چی كار بکنید؟ حتفش بکنید بچیدید چیدنش کوتاه كنيد؟ واقعی چی کوتاه کنید با الله که موزر هست ولی اول آخر سیبیلارو کوتاه کنید نه اینکه از ته بچینید از ته تیغ بزنید اینجا هم گفتم عملا رسول الله علیه و سلم داره بهمون یاد میده که که چگونه باید رو کوتاه بکنیم و چگونه کوتاه میکردن خودشون در زمان رسول الله علیه و پس هدی رسول الله صلی الله علیه و سلم کوتاه کردن سیبیله و تو هم به کوتاه کردن بر برخلاف مجوز که رو رها میکردن. سادوشا السهافتو مين حديث امام الترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا واصل ابن عبد العلا قال حدثنا محمد بن فضيل عن نبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن نبي هريرة رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها ودر رواية البخاري فنهش منها نهشة حديث در البخاري ومسلمين حديث در بخاري ومسلمين بهاردو تلافزي قفت اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلحمه اووردن برای رسول اللہ علیہ وسلم گشتی اون گشتی گشت بازو مایچه دست بس گسفند اووردن برای رسول علیه و سلام قشت چرا فرفع ایلیه الذراع یکتی از اون دست را باید داشتن دست ذرا از آرنج سر انگوش بهش گفته میشه ذراع دست را نپا دست حیوان این گفته میشه ذراع که نیمیتره از آرنج. تا سره انگوشتا. یک عدواتی هم هست ذراع که بهش میگن چی؟ پیش خودمون بهش میگن گز. یک گز میشه چی؟ پنجه هستان تقریبا. که پارچه فروش هم کنه که پارچه رو گز میکنن میدونن. این قسمت از دست چیه؟ ذراعه. صاعد دست. ماییچه مرمولتیفی داره و گشتش کمه قشنگتر راحترم پخته میشه. و كانت توعجی به رسول الله صلی الله علیه وسلم داشتن این گوش را گوشت مویچه رو دوست داشتن گوشت مویچه دست فنهس منها و دروات در فنهاش منها نهشه فرق نهس و نهش نوع خوردنه نهس با دندون جلو خوردنه و نهش با دندون بغل خوردنه و دندونه بغل این نهشه و نهش منها نه. شاید به هر دو تا تری خورده احتمال داره گوش که ظریف باشه با دندون جلو خورده میشه گوش که قتاش بزرگ باشه معمولا انسان با دندون های بغل اون گشت را تیک میکنه و از استخون جدا میکنه و میخوره خب رسول الله علیه الصلاه و السلام این گوش را خوردن قصه این گوش خوردنش چیه؟ این واقعه در غزبه خیبر پیش اومد این قضیه اون زن یهودی هست که مسلمان هم میشه. میخواست امتحان بکنه که ببینه که رسول الله علیه الصلاه و سلام پیغمبر هست یا نیست. زینب بنت الحارث میان یهود تحریکش میکنن که تو گوش را سمی کن تا ببینیم پیغمبریان. اگر پیغمبره که زنده میمونه، اگر پیغمبر نیست که شرش راحت میشی. بعدم بهش گفتی بودن که رسول الله علیه و سلم گوشت مایچه بازو دست را بیشتر دوست داره. سمیشو بیشتر میکنه. رسول الله علیه و سلم گوشت را بر می داره چون اول خودش شروع می شروع کردن بازو را برداشتن که بخورن، اون استخوان، اون تکه گوشت، اون قطعه از اون بازو مایچه گوشتی که آوردن، پخته شده، کباب شده برای رسول الله علیه و سلام صحبت میکنه میگه که این گوشت سمیم نخور. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیخوره ادامه نمیده زینب مسلمان میشه به رسول الله علیه و تسلیما بلاش حتا میجران نمی کنه مسلمان میشه بعد او رو میاره میگه چرا این کارو انجام دادی بعد میگه که خاصا ببینم اگر پیغمبری که نمیمیری اگر پیغمبر نیستی که الله شرط تا سر مکام میکنه حالا میاد در ادامه حدیث که یکی از اصحاب میخوره و اونجا کشته میشه و میمیره با اون که بعد رسول الله صلی الله حد وقصاصره روش اجراميكونا نعم يا داش الله دار بحث شن هنوز احادثشو خاهم داش سدو شستو هشتمين حادث امام الترمذير رحمه الله ميقو يات حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود عن زهير يعني ابن محمد عن ابي اسحاق عن سعد بن عياد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال وصم في الذراع وكان يرى ان اليهود سموه حديث مشخصه الحديث صحيحه هرچن که اینجا ضعف در اسنادش هست زهير زعف درش هست و هم مساح سبیعی که مدلسه و سعد بن عياض صدوق این مدار الاسناد روی این روات که ضعفشون يسيره حدیث بخاطر همین الباني رحمه الله تصحيح میکنه درسته که زعف هست ضعفش يسيره اندکه طرق زیاده مثل حدیث قبلی در بخاری مسلمه اینو این نوع احادیثی که ضعفش یسیره قابلیت تقویت رو داره بخاطر خاطر همین البانی تصحیحش میکنه ابن مسعود رضی الله عنه میگوید که کان النبی صلی الله علیه و سلم يعجبه الذراع رسول الله علیه و سلم گوشت بازو دست را مایچه را دوست داشت مایچه دست هی بود بازو سف قال و ثم الذراع اون ذراع اون دست ساعد مایچه مایچه دست از رسم میکنه كل انگشتنده رو سمین میکنه ولی اینجاش بیشتره اون زن یهودی که گفتیم زینب بنت الحارث بود این کارو میکنه ابن مسعود میگه و کان یرا یعنی کان یرا ابن مسعود نفسه خودش ذهبی میگه که به نظر من یهود این کارو کردن که در طرق دیگر روایت اومده به سراحت که چی که یهود این کارو کرده اون زنم یهودی میده و یهود اومدن اغواش کردن که اینجوری کاری رو بکنه چون خودش ظاهرا شاهد این قضیه نبوده به خاطر همین به این نحوه نقل میکنه که گفته شده یعنی که یهودی ها اومدن کاری رو با این سم را گذاشت در, در اون گوشت و تقدیم میکنه برای رسول الله علیه الصلاه و السلام و آثار این سم برای رسول الله صلی الله علیه و در جسمش باقی میمونه از دردش البته نه اینکه به خاطر اون سم از دنیا رفته نه بعضی از علماء گفتن که این سم بوده که سبب شده رسول الله صلی الله علیه و از دنیا بره و این به خاطر اینکه اجر شهادت را پیدا بکنه ولی خب اجتهادی که بعضی از علما کرده در صحیح بخاری ولی داریم گفتیم درد رسول الله صلی الله علیه و نسبت اون سم اون سم در خیبر بودی رسول الله علیه و سنت با اون سم نمرد چندین سال گذشته الان چهار پنج سال گذشته از اون واقع در صحیح بخاری داریم که امه عایشه میگه در مرض وفاتش چنین گفتن یا عایشه ما ازل اجد ال ام الطعام الذي اكلت بخیبر فهذا اوانه وجدت انقطاع ابهری من ذلك السم یعنی اینکه دیگه رگ گردن قطع بشه از درد اون از اون نثار اون سمی که خوردم در خیبر ولی گفتید این درد که رسول الله علیه و سنت و داره میگه احساس میکنم انگار که مثلا در اثر اون سمه نه اینکه اون سمه خودش سبب شده باشه چون الله جل وعلا میگه در قرآن نسبت به رسول الله علیه و تسلم والله یحصمک من الناس والله یحصمک اسمت اشی اس اینکه کسی بهش تعدی بکنه کسی بتونه او را بکشه کسی نمیتونه رسول الله صلی الله علیه و تسلم بکشه والله یحصمک من الناس الله محافظه رسول الله صلی الله علیه و تسلم بود اگر قرار بود که میمرد وای همون جوی که سم می خورد میمرد اینجا درده که اصلا علی الله و سلم میگه احساس میکنه اثر اون سم مجرد درد یعنی و این زن ابتدا رسول الله عليه الصلوات الله و سلم ازش حرف میکنه ولی بش بن اونجا که گوشت رو میخوره رضی الله عنه به شهادت میرسه کشته میشه و خانواده بش بن رضی الله عنه تقاضای قصاص را میکنن که اون زن دیگه بعد قصاص میشه و کشته میشه تا که اختلاف در این قضیه هرچند اختلاف در این قضیه ولی خب این چنین در بعض از سرخ روایت اومده سبحانك الله بحمدك سبحان الله بحمد و صلاة على محمد و لا محمد